دو شنبه نخستین یک شنبه را در نهایت سادگی گذراندیم دیدی که هیچ فوق برنامهی در کار نبود هیچ امر دشواری هم وجود نداشت دیگر معجزهی در کار نیست برای رسیدن به اوج از من بال و پر جادو نخواه هیچ چیز همچون اراده به پرواز پریدن را آسان نمیکند نه کیمیاگری وجود دارد نه پری هایی نه ساهر پیری و نه درویشی که راه رسیدن به سرزمین خوشبختی و قصر بلورین رؤیاها را به تو نشان بدهد همینقدر که اتر نعنا مهربانی چند شاخ گل کمی ایمان کمی روی خوش های زبر سفید و چند دان تخم مرغ محلی وجود داشته باشد کافی است دیدی که در خط ممکنات حرکت کردیم یک کاسه لپر را دور انداختیم جای یک پرده نقاشی را با پرده دیگری عوض کردیم یک گلدان سفال را برغ انداختیم خاک را از لب درگاهی دستشویی رفتیم احوال هم را خالسان پرسیدیم به دیدار دوستی رفتیم فرزندان مردی را که در راه وطن کشته شده بود کمی خنداندیم به قدر احتیاجمان کار کردیم چیزهایی یاد گرفتیم و یاد دادیم و شب بی استراب و دقدقه خفتیم تو نشستی و کار کردی این عادت من است و میل من زندگی من هم برای آنکه سر و سامانی بگیرد به کار اضافه من محتاج است. اما از وقت تو بچه ها به بهانه ضرورت کار بیشتر که نمیزنم. میزنم. از خواب و استراحت و شادی هم نمیزنم. بعضی ها را دیدم که از وقت کم شکایت میکنند. آنها میگویند حیف که نمیرسیم، گرفتاریم، وقت نداریم، عقبیم. اینها واقعا واقعاً بیمار خیال های کاهلانه خود هستند. وقت علل اصول بسیار بیش از نیاز انسان است. ما وقت مصرف مانده و بوی ناگرفته بسیاری در کیسه داریم. وقتی که تباه می کنیم، می سوزانیم، به بتالت می گذرانیم. بسیاری از ما میتوانیم پنج برابر، ده برابر یا بیش برابر آنچه کار میکنیم، کار کنیم، یاد بگیریم، بیافرینیم، تغییر بدهیم. انسان شهری عجیب در بیکارگی و بتالت فرو رفته است. بحان و وراجی، شوخی های مبتزر خجالت آور، های بدون عمق، وقت کشی، خواب های طولانی پیر کننده، و همیشه در انتظار حادثه غریب و دگرگون کننده اگر نمعجزهی دست کم کرامتی و ناگهان حل شدن جمیع مشکلات اما این نوع برخورد با زندگی فقط تباه کردن زندگی است اصل نرنج از اینکه باز می زندگی فقط در روزمرگیش زندگی است و می تواند سرشار از شادمانی و خوشبختی باشد در روزمرگی سلامت روزمرگی بدون فساد هر چیز والای عظیمی هم در همین روزمرگی ها جاری است هر چیز قولاسای تکان دهنده ماندگاری که به ذهنت می رسد و یادت باشد که هر چیز معمولی عادی نیست عادی نفرت انگیز است اما معمولی میتواند عمیق، پاک، روشن، تفکر انگیز، محصول تفکر با ابعادی از بیزمانی و بیپایانی باشد. امروز با مادر به باغ ملی برویم. نه، امروز در خانه ورزش کنیم، دیروز به باغ ملی رفتیم. حوصله آن همه سلام و علیک و احوال پرسی را ندارم. وسلی فواره ها را هم ندارم میترسم که یک نواختی شکل باق آدمها آدم ها خستمان کند فردا مادر را میبریم حرفی نیست یادت باشد یک نامه به روابط عمومی شهرداری بنویسم و بنویسم که چرا حتما باید صبح خیلی زود که همه مردم مشغول ورزش هستند کارگران شهرداری باغ ملی را به آن شکل فجیع بیرحمانه جارو و رفت و روب کنند و آن همه گرد و خاک به هوا و به درون ریاهای مصدوم ما بفرستند و بنویسیم که این همه پرنده را که در قفس انداختهاند به یک باغ وحش بزرگ جنگلی ببرند و رها کنند و نشان بدهند که واقعا طرفدار آزادی هستند میخواهیم چه کنیم که از شکنجه دیدن جانداران لذت ببریم میخواهیم چه کنیم زیبایی ها را در زندان ببینیم به خصوص آن چند عقاب بال و پر ریخته را که به پایشان تناب بستند که فرار نکنند و به زودی با نکبت و ذلت خواهند مرد به کوهستانها بفرستند و اینها که دین و ایمان حسابی دارند توشهی برای آخرت خودشان و پا کنند و بنویسیم به خصوص آن گله خرگوش های بیمار درد از تک افتاده را که نه فقط بچه های ولگرد بیخیال بلکه بزرگ‌ها هم به آنها سیخونک فرو می به بیشه ها بفرستند و بنویسیم که اگر همه این جانوران بیگناه را که اثارت آنها نمودار بیماری روح آدمی و میل روانی به آزار دادن جانداران است به یک باغ وحش جنگلی بزرگ ببرند که بسا که مردم هم مجبور شوند برای تماشا و هواخوری از شهر خارج شوند مردم را به هزاران طریق می توان شادمان کرد که نمایش جان کندن جانوران بیگناه در زندان یکی از آن هزاران نیست مادر از اینکه در برابر او خمراست میشویم خندش میگیرد پسرک به ما میپیوندد مادر میگوید با این پنیر نان گرم و برشته سنگک عجب میچسبد، پسرک تصدیق میکند، من با اکراه تن به رفتن پی نان میسپارم.